گروه جوان و فرهنگ به نام خداوند جان و خرد سلام بر شما همراهان رادیو جوان افثانه ها انعکاسی از امیخترین آرزوهای مردمان هر سرزمینه. درسهایی که از افسانه گرفته میشه نوعی هشدار برای تمام افرادی که اخوا میشن تا از ارزش های اخلاقی و مذهبی جامعه دوری کنن. افثانه ایرانی ما اختصاص به افثانه از مردمان سرزمین کوهن بختیاری داره. افسانی به نام سه برادر برگرفته از کتاب افسانه های مردم بختیاری به کوشش سرکار خانم کتایون لیموچی امیدوارم که از شنیدن این افسانه زیبا لذت ببرید در روزگاران گذشته در سرزمین کهن بختیاری مرد ثروتمندی که ریاست ایل بزرگی رو بر عهده داشت به اتفاق دو همسر خودش که یکی بیبی بی و دختر کلانترزاده و دیگری رعیت زاده بود زندگی میکرد مرد که اون رو خان بزرگ میگفتند سه پسر داشت ملک جمشید و ملک خورشید که مادرشون بیبی بی یا همون کلانترزاده بود و ملک محمد که از همسر رعیت زادش بود پسرهای خان بزرگ هرس رشید و زیبا بودن و زندگی خوب و خوشی داشتند تا اینکه یکی از روزها خان سه پسرش رو احضار کرد و اونها گفت امروز باگت برای شکار به کوه و صحرا بریم میخوام ببینم پسرای شجاع و رشیدم شکارچیای ماهری هستن یا نه؟ پسرها هم برای اثبات شجاعت و مهارتشون در شکار کردن فورا اسبها رو زین کردند. توشه یه سفر تیر و کمونهاشون رو برداشتن و با اسبها به تاخت رفتند تا به صحرا و کوهستان رسیده اما هر چی جستجو کردن نتونستن شکاری پیدا کنن و دست از پا دراستر به طرف خونه حرکت کردند. ملک جمشید و ملک خورشید که بیبیزاده و بزرگتر بودن در جلو حرکت میکردن این دو برادر مغرور و خودخواه بودن و خودشونو بالاتر از ملک محمد میدرستن ملک محمد پشه سر دو برادر بزرگش در حرکت بود که یه دفعه روی زمین چشمش به یه پوست افتاد ملک جمشید و ملک خورشید هم اون پوست رو دیدن اما به اون توجه و اعتنائی نکردن و از اون گذر کردن. اما ملک محمد از اسب پیاده شد و اون پوست رو برداشت. روی پوست نوشته شده بود بلبل آوازخان. خلاصه ملک محمد پوست رو برداشت و هر سه برادر به راهشون ادامه دادن تا اینکه به خونه رسیدن. اونا به پدر گفتند. ای پدر عزیز ما هیچ شکاری رو پیدا نکردیم و در این موقع ملک محمد جلوتر رفت و پوست رو دو دستی به پدر تقدیم کرد پدر وقتی نوشته یه روی پوست رو خوند به پسرش گفت هر کدوم از شما این بلبول آوازخون رو برای من بیارین تمام مال و ثروتم رو به اون می و اون رو جانشین خودم میکنم. پسر با شنیدن این حرف ورا آمادگی خودشون رو برای آوردن بلبل آوازخوان اعلام کردند و دیری ننگذشت که توشه یه سفر رو بستند اسباب تند رو رو زیم کردند شال و قبا پوشیدن و سوار اسباب شدن و تاختند و تاختند تا بهی سراهی رسیدند مونده بودن که کدوم راه رو انتخاب کنند راه اول راه برو بیا بود راه دوم راه پایینی بود و راه سوم راه برو نیا بود سه برادر برای انتخاب راه خودشون کمی تحمل کردند و بالاخره ملک خورشید راه برو و بیا رو انتخاب کرد و رفت ملک جمشید راه پایینی رو انتخاب کرد و اونم رفت و ملک محمد راه سوم یعنی راه بر و نیا رو انتخاب کرد و براه افتاد ملک محمد مسافت زیادی رو پیمود خست و گرسنه شد از اسب پیاده شد و برزمین نشست یه غذاش رو پنگ کرد تا غذا بخوره هنوز لقمه اول رو توی دهنش نزاشته بود که یه روباهی در مقابلش ظاهر شد و روبهروی او نشست و خیره به سفره بود. ملک محمد که جوون مهربون و دلرحمی بود کمی از غذاش رو به روباه گرسنه نداد بعد هم بلند شد و پاو در رکاب گذاشت به زین نشست و همین که خواست حرکت کنه یه دفعه روباه راه اونو صد کرد و پرسید کجا میخوایی بری؟ ملک محمد جواب داد من باید به دنبال بلبل آوازخان برم روباه گفت من نون نونمک تو رو خوردم پس وظیفه دارم به تو کمک کنم. ملک محمد گفت چه که میتونی به من بکنی؟ روبا چند تا از موهای تنش رو کند و به ملک محمد داد و گفت هر وقت مشکلی برات پیش اومد و احتیاج به کمک داشتی یه دونه از این موها رو بسوزون. من فورا حاضر میشم و به تو کمک میکنم. ملک محمد موهای تن روباه رو گرفت و بعد از تشکر از روباه به راهش ادامه داد ملک محمد سوار بر برعصف شد و تاخت و تاخت و کوه و دشت و زیر پا گذاشت اما اثری از بلبل آوازخان نبود که نبود ملک محمد هفت شبان روز تاخت و رفت و رفت و رفت دیگه خستگی تمام توانش رو گرفته بود از عصب پیاده شد یه گوشهی نشسته و سرش رو روی زانو گذاشت بله نومیدی تمام وجودش رو پر کرده بود یه دفعه بیاد روباه افتاد و یه دون از موهای روباه رو سوزوند و در یه چشم هم زدن روباه در مقابلش ظاهر شد و گفت با من کاری داشتی؟ چه کمکی از من ساخت است؟ ملک محمد گفت ای روباه عزیز هرچه کوه و دشت و صحرا بود زیر پا گذاشتم ولی اثری از بلبول آوازخان ندیدم روباه خنده یک کرد و گفت بلبول آوازخان برو به کوه سفید اونجا یه علازنگی خوابیده ملک محمد با تعجب پرسید علازنگی؟ روباه گفت علازنگی همون دیو سیاهه اون هفت سال میخوابه. باید هفت سال انتظار بکشی هفت سال که سر اومد اون وقت منتظر باش به محض اینکه که زنگی یا همون دیو سیاه تکون خورد که بیدار بشه پات رو روی رکاب بذار و فوراً به اون سلام کن ملک محمد پرسید به اون سلام کنن؟ روباه جواب داد اره یه سلام بلند و محکم اگه بهش سلام نکنی اون فوراً تو رو میخوره ملیت محمد گفت خب بعد بعد باید چیکار کنم روباه گفت وقتی به علازنگی سلام کردی اون سر صحبت رو با تو باز میکنه بعد تو می‌تونی بلبل آوازخوان رو ازش طلب کنی به همین سادگی ملک محمد که خیالش کمی آسوده شده بود با خوشحالی از روباه خداحافظی کرد و به راهش ادامه داد ملک محمد رفت و رفت و رفت تا به کوه سفید محل زندگی علازنگی همون دیو سیاه رسید اونجا اونقدر به انتظار نشست تا بالاخره علازنگی تکون خورد دهنش رو باز کرد و نقره کشید ملک محمد فورا پا در رکاب گذاشت و با صدای بلند سلام کرد علازنگی در ری کرد و گفت <تصفح> <تصفح> اگه دیرتر سلام می کردی الان که بزرگت گوشت بودن <آوه> به بعد ادامه داد خب چی می چرا اینجا اومدی؟ ملک محمد جواب داد من فرسنگ ها راه اومدم هفت سال سب کردم تا تو بیدار شی به امید اینکه بلبل آوازخون رو به من نشون بدی حلو زنگی گفت اگه بلبل آوازخون رو میخوای باید اول بیبی تو گلی رو برای من بیاری تا من اونو از نزدیک ببینم ملیک محمد گفت اون کجاست؟ چجوری میتونم اونو اینجا بیارم؟ حالا زنگی گفت اون توی دریا در عمق آب زندگی میکنه باید برای آوردن بیبی تو گلی عجله کنی چون من از انتظار کشیدن اصلا خوشم نمیاد ملک محمد هم درنگ نکرد و سباه اسب شد و به طرف دریا رفت تمام دریا رو زیر پا گذاشت اما از بیبی بی تو گلی خبری نبود که نبود ملک محمد مجبور شد این بار هم یکی از موهای روباه رو بسزونه و همین کار رو هم کرد و روباه در یه چشم هم زدن حاضر شده گفت این بار چی میخوای؟ من چه کاری میتونم انجام بدم؟ ملک محمد گفت ای روباه عزیز علا زنگی از من بیبی تو گلی رو خواسته اگه بیبی تو گلی رو به اون نشون بدم اونم بلبل آوازخون رو به من میده روباه فکری کرد و گفت آه چاری کارینه که یه چادر شب گلدار رنگارنگ زیبا روی دریا کنیم ملک محمد اون چنو که روباه گفته بود انجام داد و با پنج شدن چادرشب زیبا و رنگارنگ روی دریا کنیز سیاه گلی به سطح آب دریا اومد. اون از دیدن چادرشب خندان شد و بیبی گلی رو خبر کرد و بیبی گلی هم برای دیدن چادرشب زیبا و رنگارنگ اومد به سطح آب دریا. آه اون مثل خورشید میدرخشید. روبا در یه آن وقت رو قنیمت شمرد و به طرف گلی خیز برداشت. اونو گرفت و به ساحل آورد. بله، ملک محمد گلی رو سوار بر اسب کرد و تاخت و تاخت و تاخت تا به کوه سفید رسید. زنگی منتظرش نشسته بود و با دیدن ملک محمد خوشحال شد و گفت: اه ها ها ها ها به اومدی دیگه داشتم از انتظار کشیدن کلافه می‌شدم. بیبی تو گلی، بیبی تو گلی کجا است؟ اون آوردی؟ و ملک محمد بیبی بی و گلی رو به علازنگی نشون داد علازنگی هم به قولش عمل کرد و بلبل آوازخون رو به ملک محمد داد ملک محمد بعد از اینکه علازنگی سیر بیبی بی و گلی رو تماشا کرد بیبی بی و گلی رو سوار بر اسب کرد بلبل آوازخون رو از علازنگی گرفت و به طرف زادگاهش برا ملک محمد افسانی ما رفت و رفت و رفت و رفت تا به یه آبادی رسید اونجا هفت شطور خریداری کرد و کالاهای زیادی رو بار شترها کرد و به راهش ادامه داد رفت و رفت تا به صحرایی رسید شطورها گرسنه بودند ملک محمد تو یه صحرا پیرمردی رو دید که با پشتهای خار در حرکت بود و خارها رو به دوش می کشید. ملک محمد به پیرمرد مرد گفت ببر جان خسته نباشی این خارها رو به من بده شطورای من خیلی گرسن. پیرمرد مرد گفت من از صبح تا شب خار میکنم و به آبادی میبرم و از فروش اونها برای خانوادهم غذا تهیه میکنم تا از گرسنگی تلف نشن چجوری میتونم این خارها رو به تو بدم ملک محمد گفت من در مقابل خارها غذای به تو میدم فبعد سفرش رو باز کرد غذای مطبوع و پرگوشت رو توی سفره چید تا پیرمرد بخوره و بقیه اون رو هم برای خنوادش ببره. پیرمرد شروع کرد بخوردن ملک محمد در حرکات چهره و دستای پیرمرد دقت کرد و متوجه شد که پیرمرد باید از خانواده اصیل و نجیب و اعیان باشه بهآور ازش پرسید پدرجان من فکر میکنم که تو باید از یه خانواده اصیل و اعیانی باشی اینطور نیست پیرمرد دست از خوردن کشید آهی از نهادش بلند شد و گفت آه ای جوان بر زخمهای دلم نمک نباش دلم پر از درده ملک محمد اصرار کرد تا پیرمرد ماجرای زندگیش رو برای اون تعریف کنه پیرمرد آهی کشید و ماجرای زندگیش رو برای ملک محمد تعریف کرد پیرمرد ماجرای زندگیش رو برای ملک محمد تعریف کرد و گفته ما سه برادر بودیم من و یه برادرم بیبی زاده بودیم و برادر دیگمون از یه مادر ریت زاده یه روز پدرم ما رو برای شکار به صحرا فرستاد توی راه پوستی رو دیدیم منو و برادرم به اون پوست توجهی نکردیم برادر کوچیکم پوست رو که روی اون نوشته شده بود بلبل آوازخوان خان برداشت و به پدرمون نشوند پدرم مرد قدرتمند و ثروتمندی بود دستودات ستا برادر برای پیدا کردن بلبل آوازخوان خان ره سپار می‌شی. ما به یه سراهی رسیدیم هر کدوم از ما ستا برادر راهی رو رفتیم من به این روز افتادم و از دو برادر دیگم بی خبرم نمیدونم نمیدونم اونا به چه سر نمیشی دوچار شدن ولی محمد برادر خودش رو شناخت و گفت نگران نباش برادر جان من برادر تو هم. ملک محمد بلبل آوازخون رو هم پیدا کردم و بعد بلبل آوازخون و بیبی توغلی رو به برادرش نشون داد و همگی با هم به رفتن و رفتن تا به آبادی رسیدن. ملک محمد و برادرش برای دور کردن چرکهای تن و مشتمال دلاک کیسه کشی رو خبر کردن تا رفع خستگی کنه ملک محمد خوب دللاک رو برانداز کرد و با دقت حرکات و رفتارش رو زیر نظر گرفت بله به نظرش رفتار دلاک مثل یک بزرگ زاده بود نه دلاک ملک محمد پرسید: رفتار و حرکات شما مثل اسیل زادگانه آیا درست گفتن؟ دلاک هم صفره دلش رو باز کرد و ماجرای زندگیش رو برای ملک محمد بازگو کرد. ملک محمد هم متوجه شد که این دللاک همون برادر دیگهشه و خلاصه همگی با هم راه افتادن به طرف زادگاهشون. اونا رفتن و رفتن تا به چاه آبی رسیدن و از اونجا که همشون تشنه بودن قرار شد آبی بنوشند. ملک جمشید و ملک خوشید یا همون مرد دلاک دل و پیر مرد حاضر نشدن برای آوردن آب داخل چاه برن و ملک محمد که دید همه تشنن مجبور شد برای آوردن آب به داخل چاه بره بله ملک محمد افسانهٔ ما داخل چاه شد و مقداری آب با سطل که به تناب وصل بود برای اونها به بالا فرستاد ملک خورشید و ملک جمشید برادر خودشون رو توی چاه رها کردند و با کاروان به طرف زادگاهشون برافتادن اونا اونها فکر میکردند پدرشون حتما ثروت و مقامش رو به ملک محمد میبخشه و پیروزی ملک محمد باعث تحنه و سرکوفت اونا میشه. دو برادر وقتی نزد پدرشون برگشتن طوری وانمود کردن که اونها بلبل آوازخون رو پیدا کردن. بلبل آوازخون از دوری ملک محمد آواز نمیخوند. بیبی بی تو گلی هم نمیخندید و کلامی بر زبون نمی آورد. پدر از نیومدن ملک محمد خیلی متأثر و ناراحت بود خب حالا بشنوید از ملک محمد که توی چاه دور افتاده بود اون فورا یکی از موهای روباه رو سوزوند و دوباره در یک چشم هم زدن روباه در مقابلش حاضر شد و ملک محمد ماجرای خیانت برادراش رو برای روباه تعریف کرد و از اون کمک خواست. روبا با شالی ملک محمد رو از چاه بالا کشید و ملک محمد به طرف خونش به راه افتاد. رفت و رفت تا به خونه رسید. پدر از دیدنش حسابی خوشحال و هیجان زده شده بود. بلبل آوازخون با دیدن ملک محمد شروع به خوندن کرد و بیبی بی تو گلی هم پایی کرد و حسابی خندید. پدر از آواز آوازخوندن بلبل آوازخون و شادی بیبی بی فهمید که پیروزی این سفر از آن ملک محمد بوده، نه ملک خورشید و ملک جمشید. بنابراین تمام ثروتش رو به نام ملک محمد کرد و اونو عنوان خان ایل به جای خودش نشون. افسانه ای ایرانی سه برادر رو از مردمان سرزمین کهن بختیاری براتون نقل کردم برگرفته از کتاب افسانه های مردم بختیاری به کوشش کتایون لیموچی همینطور که زندگی گذشتگان برای ما افسانه است زندگی امروزی ما هم به طور حتم روزی برای آیندگان قصه و افسانه خواهد بود هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالحپور ویراستار سوهیلا کریمی اقدا، اجرا مهران دوستی صداوردار علی بخشی تیع كننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود